اصول پرسیدن که از چشمام خیلی خسته شدم گفتم با اینکه نگاهی حرام انجام نمیدم ولی نگاه هم داره منو آزرده میکنه مجبورم خیلی مواظب چشم باشم گفتم مراقبت که همه دینداری تو مراقبت انسان تو تو مرحله ای بعد بگذره یعنی مرحله این که ما باید دیندار باشیم به این نتیجه برسه دنبال فقط هوا و دل رو اینا نباشه بعد از اینکه قرار شد دیندار باشه باید مراقبه داشته باشه مراقبه این باشه که از مسیر دین پارو بیرون نذاره تا کم کم دینداری عادتش بشه از اون عادت یلگی مثلا بیرون بیاد من تا توی این مراقبه نباید خیلی فشار آورد مراقبه مرحله اول دوم سوم بوم تا جلو مراقبه اول این هستش که نگاهمون، کلاممون، زبانمون، گوشمون، دست و عضو و به سمت مخالفت فرمان خدا نره. این مراقبه اوله. ولی اینکه در نگاه حلال هم مراقب باشیم، این مراقبه ذهنیه. مرحله دومیه. این لازم نیست فعلا. همین که مراقب باشیم اون به خطا نیفته، خطا یعنی چی؟ و چرا که خدا فرمایش کرد و نگاه نکن اونو مراقب باشیم که مقدمی گناه پیش نیاد وقت این کافیه یه مادری سوال پرسیدن که با بچه هاشون بخورد کنن که هم از این زمان کودکی بچه ها استفاده بشه از دستن و اینکه از اون طرف با مادر احساس بدی پیدا نکنن چون میگن اگر امرو نحی نکنیم بینه از من و بعضی چیزها رو درسشون راید نمی کنن گفتن خلاسه چطور ایجاد کنی که خودشون اوتوماتیک بعد مهربانی عملی رو داشته باشه کمانکی دارن همین مدرم خیلی نگران نباشه نگران این باشه که نکنه از دست خودشی خطایی مثلا صادر بشه در این حال پدر هم مواظب باشه لغومی حلال بیاره خدا را حبزم کنه نه نگرانه بی نظمی بچه ها بود بچه ها دیگه بالاخره تا میگن دور اجون همینگی گوشاله گاب شود دل اطلابش گاب شود دیگه قاعده پیدر همینه که باید تحمل کنه بچه ها بزرگ و عاقل شن و مرا خودش باشه خطایی نکنی؟ یعنی گوانوها نکنی؟ آره یه بقیق حرف ناجوری تو تلفن غیر تلپون بچه ها گوش میدن بچه ها گوش میدن با کنشتشون نمیده چون کلام نداره بیان نداره تحلیل نداره بله تو حافظش یه زبط صوت قوی داره و یه حافظی بانک اطلاعات قوی دوربین خیلی قوی هم داره با چشمش هر کار سکنات همه چی رو میبینی دور خودش. تو رو برای خودش هی اکس می دازه. اینو تو حافظه نگه می داره اون زمان که زمان عقل و زمان تحلیل بروز میده باید بعد پدر مادران می نه ما نه پدر مادران ما اینجوری نبوده. این چی شده اینجوری شده حواظش نبوده که زمانی که داشته با مثلا فیلان خانم صحبت می کرده از مادرشور خواهرشور ممکسی چیگه نموده صحبت میکرده این داشتی میشنیده همه چی رو نباید از بچه ها دید یه حدیث نوشتن که خیرون لنسای ان لا یرای نر رجال بلا یراهون رجال نخواستن که نظرتون در این حدیث بگنن خب خیلی خوبه متاب تناسب زمان بعضی ها دوست دارن خود نمایی کنن اصلا خانومها ها طبیعتا خودنمایی رو دوست دارم این تو تینت خانوم ها خدا قرار داده اونتا افرادش اینه که در هر جای این خودنمایی رو داشته باشن تقدلش اینه که برای محارم خودشون ها همسرشون لذا بهترین برش این هستش که دل بخواه در معرض خودشونه قرار ندم اونجایی که دیگه لازمه مثال 22 بحمن، باید بریم و حضور پیدا کنیم نمیشه گفت خانم نرو حدیث داریم حدیث میگه اونجای که اختیار داری و لازم نیست خود نمایی نکن چون دیگه بندش که میشه استعمالت فقیی کرد که خانمو در حد شرایط بهداره که خانموزید. نه استعمالت فقیی کرد بچه پنج ساله را چطوری اهل نماز کنی و تمرین بدهیم با نوازش، با یکی درمیان، یه وقتی، موقعی و مهمتر که خودش آدم اول وقت کنش نماز بکنه ببینه ببینه که تا داره میگه الله اکبر مادر داره آمادگی برای نماز پیدا میکنه پدر همینطور تو خونه درازن نکشیده تلویزون را اقبزلو میکنه وقتی می نه اینا از بیده اون یاد میگیره مثل هجاب وقتی می بیده نامحرم حتی مثلا فامیل نزدیک ولی نامحرم مادران میان پوششدار و رو میگیره و هجاب رو دخترم یاد میگیره حساب باز میکنه بیشتر آینه پدر مادران بچه ها منزویت بودهان رفت چیزی؟ برهان رب در قرآن با برهان رب در میون اهل حکم و فلاسفه و کلامیون فرق میکنه برهان رب اون ای بود که خدای متعال نشون میده وقتی حضرت یوسف علی نبی نوی علیه علیه در معرض گناه قرار گرفت مقدمه شنه چینده افتاد تو گناه همه دران بسته شده بود یعنی هیچ کس ناظر نبود حضرت فرار کرد برگشت و فرار کرد فرار کرد به کجا به یه فاصله اینجوری در بسته یه دو قفله. یعنی اگر به این نحوه شدت دبیدن ادامه میداد که ادامه داد میخورد به در همه سر صورتش میشکست با صورت میخورد تو در ولی دوید فرار کرد و با شدت هم فرار کرد در باز جهد عزیز مصر اومد و خصوزیر مثلا فران اون زمان که زن زولیخ... شوهر زلیخا بود این برهان رب یعنی بجایی که با صورت بخورد به در که میخورد اگه باز میکنم میزد خودشو به در و دیگه زولیخای آدم خونی مالی رو که کاریش نداشت که این هر چیه میخواد پیش پیاد در باز شد حاکم خودش محاد جلو بایست داد دید پیران از پشت پاره شده خود این هم که با شدت داشت میمد طرف در کجا میخواد فرار کنه همین چی برهان بر این بود بر این بود که او کاره به این حرف فرار از خطا میکنه. بگه که همیشه انسان اگر دنبال حرف خدا باشه راه مفر رو خدا باز میکنه. خدا رحم میکنه و درست میکنه. یهودا در جلسه قبلی فهمید که برای دعا کردن اول دعا حمد خدا رو انجام بده. بله جوری انجام ما انسان ها عادت داریم وقتی یه چیزی از همدیگه که میخوایم به شما چقدر زیبایی، چقدر خوبی چقدر سلیمی چقدرمهربانی؟ خیلی دا از شما شنیدن و هم حرفها میزنیم دیگه هم اون اینجوری هستیم ما طلب ها فقط اینجور نیستیم. ما وقتی یه کار خیلی در انجام بشه و پلی از کسی بگیریم میشیریم صحبت میکنیم که حاجی جان چقدر محاسنت مثلن نورانیه اینه اون <تصفح> به واقعیت هم میگن. گاهی خبر میدن قصد اخبار میکنن قبصه میکنن دروغ نگه گاهی هم ما قصد اینشان میکنی مثلا دنبال این که تو اینجوری بشی داریم بهش میگیم این فکر میکنه داریم خبر میدیم قصد اینشان میکنیم مثلا در نماز میکنیم که یاکن عبدا و یاکنسته دروغ از این بزرگتر فقط خدا رو میپرسی و در این پرستش فقط از خدا کمک میگیری میگه آره اینجوری نیستی که تو این همه این برام براموال میزنی برای اینکه رزق روزی تو فقط خدا رو میپرستی فقط از اون بگی با میخوام اینجوری باشم این دعاست از خدا دارم میخوام که خدا پقط میخوام تو رو بپرستم و فقط در این پرستش از تو کمک میخوام هیچ کسی که نمیمتونه کمکم کن اینو میگن مقام انشاء یعنی یه درخواسته آقا چید چهره یه نورانی داری؟ یعنی اینشالله نورانی بشی؟ <سید> اینجوری خدا خدای هم همینطوره میگه شماها اینجوری هستین ها این هست وقتی یه چیزی میخواین اول مدخو سناه اون خلاصه کارپرما اون کسی که همینچی دستشه با ما هم میخواییم برخورد کنیم همونجوری برخورد کنیم مرحمدل الله لذیفتر از سماوات و العرض و ما مثلا بین ما باید شیح. میگیم میگیم میگیم که تو اون کسی هستی که این همه عالم رو خلق کردی من یه قرض آبا میخواهم مثلا عدا کمک کمکم کم این چیز کوچیک از تو وقتی که بعیده توی خدای با این هیمنه این حاجت کوچیک منو این اونست ما رو با خدای مطال بیشتر میکنه باید <تصفيق> <تصفيق> خدا به ما احتیاج نداره. ساکزین رو باز نه خیلی دعا کنه. اول همین رو بیبنه. آره، قرنیشی بکنه. ای خدای عزیز، ای خدای مهربان، ای خدای همه چیز. چون کسی که خیلی وسواس داره این تابه شیطان شده یا مریض. مریضه بعد نه شدیدن وثباسه تمیزی کسیفی می گیرن دکتر یک جلیسه دو جلسه برن خوب میشن بعضی از هرمونا و بعضی از قدرت ترشواتش نمتادل میشه شه این حالت پیش میاد. آن و دارو میده ده تعادل پیدا میکنه ترشوات خوب میشه. شه یقین وثباسی اعتبار نداره یعنی چی؟ چی؟ یقین وثباسی اعتبار نداره خب آخه اون یه چیزایی رو یقین میکنه که هیچ عقلی نمیپذیره. بالاا این پایین که تشی میکنه که من پام نیست که نجیسی با اونجا نمی رسه. یعنی پرتاب پرتابوت خواستم باشه به پایتونی نمی رسه. به چرا؟ حس کردم. این حس و این حالت، هیچ اعتباری نداره خوشیه زدن برای خانمو و دختر وچه ها واجب هست؟ نه واجب نیست اگر احتمال اغلایی بده که از همین چهره معمول و از این وجه یا مثلا از موج به سر کسی استفاده سو میبره میگن بپوشونه. برای اونها نه برای همه اگه همچه احتمال قوی داد بله بله خوضب نیست همسر امام پوشیه نمیزد همسر علامه تبا طب تبایی پوشی نمیزد اینا دیگه اندکار بودن دیگه پسر بچه نوخسانه از کی با اندازون بشه بعدش بخوایم که نماز رو بعد با مهربانی و طوفت و اینها تمرین بدیم که سالش میشه اون سال شرع خلاصه سختش نباشه. گفت چند سال طول میکششه انسان به که قلبی برسه و عمل به بستگی داره به سبکن سنگنی خودش عادت هاش بعضیاد دست زیر سی سالگی بعضی و بعد از سی سالگی با. گفتم بدون غستادم میشه؟ نه؟ خیلی علاقه من به خواب هستم و براش خیلی لذت می‌برم هممون همینجوری وقتی هم احساس خواب‌آلودگی می‌کنم نمی‌تونم هیچ کاری انجام بدم من برای کنترل خواب و تنظیمش برنامه‌ریزی کردم بعد از بیکاری دست پیدا یا از اصحاب صبح بشم یا از اصحاب عصر بشم بعضی صبح می‌خوابن عصرو کار میکنن بعضی همسان صبح کار میکنن عصرو می‌خوابن بعد کار که مشغول بود محبیر خوابش که دندان؟ باید بره پیش محبیر که اگه پیدا کرد، سلام هم برسید محبیر در کار نیست گفتن در زندگی عادی و معمولی گفتن در زندگی عادی و معمولی نمیتونم زندگی کنم هر بار یه و چالشی برای خودم پیش میارم یکی که بردارم میشه یه حاشه دیگه میاسه زندگی تو دنیا همینجوریه لغت خلق من امسان نپی کبد در سختی آرامش مطلق پیش نمیاد باید آماده باشیم که پستی بلندی هست تمام شد جایی سوالی هم چند تا یکی دیگی بکنیم دفتن که کسی مشکلات شخصیتی داره ده ده ده. مثلا میترسید حرف حرف رو بزنه یا یک سری ناتباه شخصی بیده این رو چی کنی یه مزار تنهایی به کوح بجه تنهایی مثلا یه, یه ساعت یه جای پیادروی کنه خود چه عادت بده به این که تنهایی کارهایی رو انجام بده به نتیجه برسه بگه من صبحا میرم تا فلان نقطه بو برمیگردم از اینجا شروع کنی کم کم کسی منان به خودش پیدا میکنه باصور خدا توفیق بده به هممون بتونیم راه خدا رو را به خوبی طی کنیم، صلوات بفرست کنیم.